از دست دادن دارایی کسانی که زندانی میشدند معمولا دارایی خود را از دست میدادند قاعدتا شخص زندانی اختیار زندگی خود را نداشت و بنابراین این دیگر نمی توانست صاحب دارایی باشد دستگاه تفتیش عقاید معمولا برای همسران بدعتگزاران، معیشتی فراهم نمیآورد اما ممکن بود ترتیبی دهد که از فرزندانشان حداقل مراقبت به عمل آید. نقشه امیریش در راهنمایی همکارانش در مورد تأمین زندگی فرزندان بدعتگزاران کاملا منحصر به فرد بود. گناهان پدران باید دامنگیر فرزندان شود. فرزندان بدعتگزاران جز فقر و بدنامی، سزاوار هیچ میراث دیگری نیستند. کلیسای بزرگوار بهتر است از کودکان مراقبت کند. پسران را به عنوان کارآموز به حرفه وادارد و دختران را به خدمتکاری، حتی غذا دادن به آخرین طفل یا کودکان مریض احوال. اما باید به آنها غذای مختصری بدهد. باشد که آنها متوجه مصیبت گناه پدرشان در شخص خودشان باشند. و اما در مورد همسران، آنها در سرنوشت شوهرانشان سهم‌اند. مگر وفاداری کامل به اداره مقدس آنها را پس از زندان ابد یا مرگ دردناک شوهران مترودشان سزاوار اغماز و آمرزش قرار دهد. کلیسا امیدوار بود شدت مجازاتی که بر خانواده های بدعتگزاران اعمال می کرد در آینده مانع بدعتگزاری شود. در نخستین سالهای تفتیش عقاید فرض بر این بود که اموال مصادره شده بدعت باید از بین برده شود پاپ اینو کانتیوس 4 دستور ویران کردن تمام خانه ها را در محله هایی که بدعت در آن زندگی می کردند افزون بر محل سکونت خود بدعتگزاران صادر کرد اما به نظر می رسید که این دستور پاپ در خیلی موارد اجرا نمی شد از بین بردن اموال بدین دین صورت سبب مشکلات اقتصادی شدید در گسترده ای می شد. اگر این سیاست به اجرا در آمد، ممکن بود همکاری و مساعدت مقامات کشوری را که دستگاه تفتیش عقاید برای انجام کارش به پشتیبانی آنها نیازمند بود، کاهش دهد. پس از نیمه قرن چهاردهم اموال را به ندرت از بین می بردند. به جای آن، اموال محکومین را میان پاپ، دستگاه تفتیش عقاید و مقامات کشوری ناحیه محل زندگی بدعت گذاران تقسیم کردند. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا راه دیگری نیز برای تبدیل مجازات گناهکاران به نفع مالی خود پیدا کرد. فردیناند آراگونی پادشاه اسپانیا در پایان قرن پانزدهم نافگان عظیمی داشت. مرگومیر در میان ملوانان زیاد بود و فردیناند همیشه نیازمند ملوانانی بود که کشتیهایش را در دریا نگهداری کنند. شاه فردیناند شخصا مبتکر ایده فرستادن گناهکاران اعتراف کرده و محکوم شده از طرف دستگاه تفتیش عقاید برای کار در کشتیهای پارویی برای مدت ده سال بود. در واقع در اسپانیا محکوم شدن به کار در کشتی های پارویی یکی از متداولترین مجازات های سبکی بود که برای گناهکاران در نظر گرفته میشد. شاه فردیناند با بهرهبرداری از نیروی انسانی در اختیار دستگاه تفتیش عقاید منبع کار ارزانی برای خودش پیدا کرد بدون آنکه مجبور شود به بردهداری آشکار متوسل گردد. ملوانان جدید را پس از اعلام علنی حکمشان با غل و زنجیر از شهرهایشان خارج میکردند و به کشتی‌های انتقال میدادند که قرار بود چندین سال زندان آنها باشد این روش تا نیمه قرن هجدهم همچنان ادامه یافت اعدام از طریق سوزاندن حد اکثر مجازات از سوی دستگاه تفتیش عقاید اعدام از طریق سوزاندن بود این شکل از اعدام به گناهکاران غیر نادم و بدعتگزاران به سر موزه بازگشته اختصاص داشت. مأمور تفتیشی که ریاست مراسم اجرای احکام را بر عهده داشت، خطاب به محکومین به اعدام می گفت ما شما را از جرگه دینی خود بیرون می رانیم و به بازوی عرفی می سپاریم. اما از دادگاه عرفی جدا تقاضا داریم که حکمش را به ترتیبی تخفیف دهد که از خونریزی یا خطر مرگ پرهیز شود این عبارات بدین سبب ادا شد که این شعار بر کلیسا حاکم بود کلیسا از خونریزی اکراه دارد خود کلیسا نمیتوانست مسئولیت خونریزی را بر عهده بگیرد اما تمام حاضران میدانستند که زندانی که به مقامات عرفی تحویل داده شود تقریباً بیدرنگ در چوبه آتش سوزانده می شود. کلیسا به سادگی تصمیم گرفته بود که مسئولیت این کار را به عهده مقامات عرفی واگذار کند. پس از آنکه یک بدعتگذار را به چوبه آتش ببندند و آتش را روشن کنند، به او آخرین فرصت برای کاهش عذاب ناشی از زندسوزی داده می شود. معموران تفتیش عقاید مردان خدا ترس را میفرستند تا با گناهکار محکوم گفتگو کنند و با او از پوچی این دنیا رنجهای زندگی و شکوه جلال خدا بگویند. آنها به او میگویند که از آنجا که نمیتواند از مرگ دنیاوی بگریزد، باید با خدا از در آشتی درآید. اگر او از توصیه آنها پیروی نکند باید تعم آتش را بچشد. اما اگر اعتراف کند آمرزیده شود و بریده نان اشای ربانی را دریافت کند. کلیسا با بزرگواری او را به آغوشش خواهد پذیرفت و با آنکه باید به خاطر خیر و صلاح روحش بمیرد بازوی عرفی چنان عمل خواهد کرد که مرگش نسبتاً راحت باشد. در صورت واقع این بدان معنا بود که بدعتگزارانی را که در لحظه پیش از بسته شدن به چوبه مرگ به گناهانشان اعتراف میکردند و خواستار بازگشت به کلیسا می شدند نخست خفه میکردند و سپس آتش را میافوختند تا جسد بیجانشان سوزانده شود شورای مرگ در هلند در بعضی نقاط بدعتگزاران را به طریقی می سوزندند که حد اکثر عذاب را بکشند مثلا در هلند که دستگاه تفتیش عقاید در آنجا به شورای مرگ شهرت داشت، سوزاندن بدعتگزاران دستخوش تغییرات راستی سادیستی شده بود. تاریخدان النار هیبرت این شکل از شکنجه را شرح می دهد. یکی از روش های فوقلاد سنگ سوزاندن نک زبان با آهن گداخته بود. سپس زبان متورم را بین دو صفحه فلزی که محکم به هم پیچ می فشار میدادند. سپس فرد معذب را در همین حال به سکوی اعدام می‌بردند تا زنده سوزانده شود. بسیار محتمل بود که قربانی بر اثر درد بسیار شدید نتواند از ناله و فریاد خودداری کند. از آنجا که زبان متورمش بین دو صفحه فلزی گیر کرده بود، صدایی شبیه زبانی بیگانه از گلویش خارج می‌شد. قصد از این کار این بود که بر سرگرمی و تفریح تماشاگران افزوده شود. در هلند که دادگاه‌های تفتیش عقاید را دومنیکن ها اداره نمی‌کردند، مجازات بدعتگزاران صورت ظاهر تنبیه مذهبی را به کلی از دست داد. در سالهای میانه قرن شانزدهم، دشمنی بین هلندی‌های پروتستان و سربازان کاتولیک فیلیپ دوم، شاه اسپانیا، به جنگ داخلی تبدیل شد. هلند در تصرف دوک آلووا نماینده پادشاه اسپانیا بود و دوک اجازه داد نبرد بین سربازانش و پروتستانهای پی با فروبان شامل کشورهای هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به یک رشته رویارویی تبدیل شود که مشخصه آنها اعمال بسیار ظالمانه بود این واقعیت که تفتیش عقاید در ابتدا یک ابزار کلیسایی و نه سیاسی و نظامی بود نادیده گرفته شد و شورای مرگ بنابر گزارشها ها بسیاری از کسانی را که بدعتگزار تلقی می کرد به دار آویخت بسیاری را نیز گردن زدند. هنگامی که شورای مرگ یک بدعتگزار را به مرگ محکوم می کرد، سربازان صفاک مهارگسیخته و و تبهکار حکم را به اجرا در می آوردند. مقامات پرتغالی به خاطر رفتار به شدت غیر انسانیشان، به هنگام اجرای حکم اعدام زبان زد بودند محل سوزاندن نزدیک کرانه رود تاگوس در لیسبون بود مقامات عرفی چوبه مرگ را به ارتفاع 3.5 متر از زمین نصب می کردند و یک تیرک افقی در بدن آن کار می گذاشتند. محکوم را از نردبان بالا می بردند و به آن تیرک زنجیر می کردند اگر آن شخص از توبه امتنا می کرد و تفتیش عقاید اعلام میکردند که او را به شیطان وا میگذارند چون این اعلانی همیشه باعث خوشنودی جمعیت میشد. چرا که نشانه فرصت دیدن شخصی بود که متحمل درد جانکاه میشد برای خواننده امروزی لذت آشکار بردن از رنج و عذاب جسمانی دیگران توجیه ناپذیر به نظر میآید. اما زندگی در آن روزگار عموماً بیرحمانه بود و جنگ خروسها به دام انداختن خص ها شلاق زدن و مسلح کردن دزدان و مجازات وحشیانه گذاران به زندگی ملالانگیز و نامطمئن هیجان میبخشید. به گزارش ویلیام هاریس رول انبوه مردم با پیبردن به اینکه فرد گناهکار به شیطان واگذاشته شده است فریاد میزد. بگذار ریش سگ را کوتاه کنیم که منظور این بود که بگذار صورتش را بسوزانیم. این کار را با بستن تکه های یک گیاه خاردار به سر یک تیرک بلند و نگه داشتن بوته شعلهور در برابر صورت قربانی انجام میدادند تا زمانی که صورت او بر اثر سوختگی سیاه میشد از ریخت افتادگی چهره قربانی و فریادهای تو را به خدا رحم کنید او بخش مهمی از سرگرمی جمعیت را تشکیل میداد از نظر آنها اگر قربانی به خاطر هر جرم شرماوری که مرتکب شده بود عذاب مرگ را به روشی کمتر بیرحمانه تحمل می کرد، نشانه نوعی دلسوزی و تره در حق او بود. هنگامی که ریش کوتاه می مقامات توده خارهای پای چوبه مرگ را آتش می زدند. در روزی که بادی نمی وزید، های آتش محل بسته شدن زندانی را فرا گرفت و شروع به سوزاندن پاهای او می کرد و او در ظرف نیم ساعت جان می باخت. اما اگر نسیمی از جانب رودخانه میوزید، شعله‌ها دیرتر به محل قربانی میرسیدند و دوره جانکندن او طولانیتر میشد و او معمولاً برای یک ساعت و نیم تا دو ساعت حشیار میماند و عذاب وحشتناکی را متحمل میگشت. شاهدان فریادهای از سر درد و رنج او را با چنان شادی و لذتی میشنیدند که هیچ نمایش دیگری نمیتوانست چنین کند، به نظر می رسد که مقامات ترتیبی میدادند دادند که همه این منظره را ببینند و فریادهای از سر رنج و عذاب فرده در حال مرگ را بشنوند. حتی مرده از دست دستگاه تیزبین تفتیش عقاید راه گریز نداشت. در اکثر مراسم اجرای احکام استخانهای اجساد بدعتگزاران محکوم شده را که مدتها پیش مرده بودند از زیر خاک در می‌آوردند و با تشریفاتی رسمی حمل می‌کردند و سپس می‌سوزاندند مجازات مرده دستگاه تفتیش عقاید به ویژه در رسیدگی و مجازات جنازه‌ها صرف نظر از اینکه چه مدت زمانی از مرگ بدعتگزاران محکوم شده سپری شده بود جدی و بسیار موفق بود. این درجه عالی انجام وظیفه از آنجا ممکن بود که دستگاه تفتیش عقاید سوابق را به دقت نگهداری می کرد و از نام و روابط خانوادگی افراد فهرست بر هرگاه در خصوص یک نمونه بدعتگزاری احتمالی اطلاعاتی به دست می آمد معموران تفتیش عقاید پروندهی علیه متهم و همکاران احتمالی او سر همبندی می کردند نمونه های بسیاری از مجازات بسیار با تأخیر مردگانی که خانواده هایشان املاک و دارایی به ارس برده بودند وجود دارد برای مثال آرنو پونجیلوپوس در سال 1260 درگذشت و جسدش را در سال 1301 از زیر خاک بیرون آوردند و سوزاندند به همین ترتیب، ارنسین دفعا و پدرش آرنود و کستلبون را سی سال پس از مرگشان محاکمه و به عنوان بدعتگذار محکوم کردند. و در سال 1330، برنارد آرنو آمبرین را که 75 سال پیش مرده بود، یکی از خیشاوندان دورش به بدعتگذاری متهم کرد. استخانهای آمبرین را در خیابان تولوز گرداندند و به نمایش گذاشتند، و سپس در مراسم اجرای احکام در ملع عام سوزاندند در حالی که کلیسا از چنین مجازات‌های با تأخیری نفع مالی میبرد اعمال خود را با دلایل دینی توجیه می‌کرد مثلا لازم می‌دانست بقایای اجساد بدعتگزاران از از گورستان‌های کلیسا خارج شوند معمولاً چنین قلمداد می‌شد که کسانی که گناهانشان پیش از مرگشان فاش نشده بود مجوز ورود به گورستانهای وقفی کلیسا را ریاکارانه دریافت کردند. کلیسا نیز میخواست خواست چنین بدعتگزارانی را از بین ببرد تا پیروانشان نتوانند آنها را جمع کنند و شاید به عنوان بازمانده های مقدس مورد تکریم قرار دهند. بدین ترتیب با آنکه بدعتگزار مرده از سوختن رهایی میافت اما اموال دنیاویش با او همراه نمی‌شد. بلکه به تصرف اداره مقدس در میآمد و خانوادهش از حق ارث به کلی محروم میشد. اسناد بسیار دقیق دستگاه تفتیش عقاید در قرن چهاردهم شوق و اشتیاق اداره مقدس را در تعقیب بدعتگزاران در گورشان نشان میدهد. گزارش دقیق صورت جلسات دادگاه تفتیش عقاید در تولوز بین سالهای 1307 و 1323 نشان می که از 930 پرونده گزارش شده در این دوره 89 مورد علیه مردگان بوده است و اگر معلوم می شد که این مردگان به هنگام زنده بودن مرتکب بدعت گزاری شده اند، اموالشان مصادره می شود. با کسانی که موفق میشدند فرار کنند و از مجازات بدنی بگریزند همان رفتاری میشد که با کسانی که از طریق مرگ گریخته بودند و به سبب اعمالشان گناهکار شناخته میشدند. اموال بدعتگزاران قائب غائب مصادره و از اعضای باقی مانده خانواده آنها گرفته میشد و بر حسب رسم دادگاه های تفتیش عقاید محلی تقسیم می‌گردید دستگاه تفتیش عقاید از فرط نیاز و آز اسناد دقیق داد و مالی خود را نگاه می داشت. بیشتر حزینه هایش را می بایست از جریمه ها و مصادره‌هایی هایی که دادگاه های تفتیش عقاید وز می می‌پرداخت. و در حالی که راهبان دومنیکی سوگند یاد کرده بودند که فقر اختیار کنند، دادگاه هایی که آنها از جانب کلیسا اداره آنها را برعهده داشتند، غالبا دارای تشکیلات پرزرگ و برق و پرهزینه بود. دستگاه تفتیش عقاید به بسیاری از اعضای غیرروحانی دادگاه های خود حقوق می و هزینه های نگهداری زندانها را که بخش اصلی تشکیلات آن بودند متحمل می شود. آشناها پزشکان، کاتبان، نگهبانان زندان و مجریان اعدام، به همگی باید حقوق پرداخت می شود. از این رو دستگاه تفتیش در بهرهبرداری کامل از مجازات هایی که وزن می مهارت زیادی پیدا کرد و به مسادره اموال محکومان، مردگان و فراریان به یکسان می پرداخت. افزون بر آن، اگر یک بدعت گذار بدون آنکه مجازاتش به اتمام برسد در میگذشت، وارسانش ملزم بودند دین او را به دستگاه تفتیش عقاید بپردازند. تاریخنگار جی, جی کلتون میگوید که میزان این مبلغ به انصاف یا آزمندی معموران تفتیش عقاید که به موضوع رسیدگی میکردند بستگی تام و تمام داشت. به نظر میرسد کارشناسان هم عقیده اند که بزرگترین قتل عام از طریق سوزاندن به دست دستگاه تفتیش عقاید را یهودیان در اسپانیا در آخرین ربع قرن پانزدهم و نخستین ربع قرن شانزدهم متحمل شدند. تعداد هایی که به دستور دستگاه تفتیش عقاید صورت می‌گرفت، از آن پس عموماً رو به کاهش گذاشت که یکی از دلایل آن این بود که تعداد بسیار زیادی از قربانیان بلقوه دیگر وجود نداشتند. هرچه دستگاه تفتیش عقاید قدرتمندتر میشد به طور فایند ای از روش های استفاده میکرد که دومنیک فرانسیس و پاپ قرنهای دوازدهم و سیزدهم نه پیشبینی میکردند و نه انتظارش را داشتند. این قدیسان و پاپهای قرون وستا امیدوار بودند از نیروی اقناع فکری در جهت هدایت و اصلاح روح گناهکاران استفاده کنند. مجازات های دستگاه تفتیش عقاید نشان می دهد که کلیسا به این باور رسید که این نیرو به تنهایی برای تزمین سلطه روحانیش کفایت نمی کند.